نگاه مخاصم آمیز میان کارگر و کارافرین و امثال اینها یک تعبیر غلط از یک واقعیت است. همه باید با هم همکاری کنند. اصلا نگاه تزاد دو تعارض و تزاهمی که بر تفکرات غربی حاکم بوده است. مخصوص ها هم نیست قبل از مارکسیستا هم نگاه ناظر به تضاد به تعارض در تفکرات غربی رائج و شایع بوده این نگاه از ذر اسلام نگاه مردودی است نگاه مقبولی نیست در اسلام دعوت به اعتلاف است دعوت به وحدت است دعوت به همکاری است دعوت به تراخم است دعوت به تعاون است این مبنای تفکر اسلامی در همه فعالیت هاست البته تعامل حدودی داره زوابطی داره حقوقی هر کسی دارد باید اینا رعایت بشه که در سایه دولت اسلامی قابل تحققه نگاه تعارضامیز غلط است نگاه تعاون و تعامل از نظر اسلام درست است و این یک است که باید در همه شعون ما در همه مسائل مربوط به زندگی باعثی وجود داشته باشه در مقابل اون کسی که به حیثیت روانی و روحی و فکری و وجودی انسان و جامعه ضربه میزنه انسان ناچار دفاع کنه اما روال اصلی عبارت است از, از تعاون و تعامل و همکاری و ائتلاف این نگاه اساسی اسلامه ما معتقدیم جامعه کارگری ما باید مورد تکریم قرار بگیره مورد احترام قرار بگیره. معتقدیم هر کسی که مشغول کار است و کار خود را انجام میدهد و این کار را خوب انجام میدهد این مورد رحمت الهی است. فرمود رحم الله امرعا عمل عملا فقطق نه. اون کسی کار را درست انجام میدهد مورد رحمت پروردگار است.